بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وأله وصحبه أجمعين أما بعد. از آداب حضور به مسجد، حالا بعضی ها واجب، بعضی مستحبه. مستحبه تو وقتی وارد مسجد میشی با پای راست وارد مسجد بشی. چنانچه در حدیث انس داریم من از سنت اذا دخلت المسجد ان تبدا برجلك اليمنى و با پای راست وارد بشی و اذا خراشت انتب ده تبدا بر برجلك اليسرى. و از خارج شدی از مسجد با پای چپ برو. این آدابه. منزلم میتون رفتی با پای راست، بیرون اومدی با پای چپ. دستی ولی برعکس. میری با پای چپ و بیرون میای با پای راست. في سنة كان قام بارده مسجد محي قبله بسم الله قفتانه أعوذ بالله العظيم وبي الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم من الشيطان الرجيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم قال علی صلوات و سلامه رسول الله منفع بعد از اینکه این حدیث رو گفته در بحث گفتن این ذکر به هنگام ورود به مسجد فا فاذا قال ذلك اگر بنده اگر اون نماز گذار این ذکر رو به هنگام ورود به مسجد گفت قال الشیطان حفظ منی سائر اليوم در بقیه اون روز از من در امان شدین دیگه من نمیتونم کاری باش بکنم قال شیطان قد حفظ منی از من دیگه در امان بود با گفتن این ذکر این ارزش ذکر ارزشش که این آداب مسجد انسان یاد بگیره بعد از این اعوذ بالله گفتن سنتك انسان بسم الله بگه یا بگه بسم الله والصلاه على رسول الله یا بگه بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله يا اولاتر له ابتدا بسم الله ميگه حادثه ياد از جمله احاديث رسول الله صلی الله عليه وسلم ميفرمايد ادخل احدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك در بعض الرواة مدين، كنونش ابن الصني روايات بيكونة در عمل اليوم والليلة، أز أنا صديقنا، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال بسم الله اللهم صل على محمد، بسم الله اللهم صلي، الله ينجو مدي، بسم الله اللهم صل على محمد، در بعض الرواة مدي، الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي، يعني بالرسول السلام بفرسه، قام الترشين كبيج بسم الله اللهم صل وسلم على محمد، يبي قال بسم الله والصلاة والسلام سلام على رسول الله مهم صلوات و سلام فرستادن بر رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم سپاس بعد از اون بعد از اون اللهم افتح لي ابواب رحمتك بهنگام دخول بگه بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم افتح لي ابواب رحمتك درهای رحمتت رو بر من بگشا الله بار الله درهای رحمتت رو بر من بگشا بازش و اگه خارجه بات خارج, خارج میشه فليقل اللهم إني اسالك من فضلك بگه بار الله من از فضلت رو میخوام منو مشمول من قرار بده بعد از گفتن البته بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اني پوي چپ كي بيرو از مسجد به بيرون بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك من فضلك اللهم إني أسألك من فضلك جون شد الحديث الحديث دي جادوني وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أجر خارج سلام بفرس براسوس وليقول اللهم أجرني من الشيطان الرجيمين بوردة اللهم أجرني من الشيطان الرجيم برا لا بانبه بدأ شر الشيطان الرجيم يعني داركنار قفتنا اللهم إني أسألك من فضلك ينام السحب قفتنا إن ذكها، إن أوراد، رفازيلته شيكوفر. مستحب كُشَا بودن در صف أول استودان الله صلى الله عليه وسلم يفرمايان الصف الأول على مثل صف الملائكة. صف أول مس صف ملاجس. ولو علمتم ما فضيلته لبتدرتمه. مبادرت میکنید اگر فجرش رو میدونید به سوی میشه تاافتید یعنی به سوی اول اگر حقیقت و جایگاه این صف اول رو میدونید نزد الله جل و که چه جایگاهی داره و در حدیث دیگر داریم از حدیث بی رسول الله صلی الله علیه و کسانی رو میبینه آخر صف میگه تقدم و فاتموا موبی بي. بی جلو به من در اون نماز اقتدا بکنید ولی اتم بكم من بعدك و هناك الدراسنا به شما اقتدا بکنن لا یزل قوم یتاخرون حتى يؤخرهم الله بدونید همچنان کسانی دیر به نماز میان صفشون آخر میشه تا اینکه نز الله هم آخر میشه یعنی الله به اونها بی توجه میشه چون خودشون بی با به الله و به نماز و طاعت این توصیه رسول الله صلی الله علیه وسلم به اهمیت دادن به نماز خصوصا در مسجد و صف اول و همراه امام نماز شروع از جمله آدابی که هست در بحث مسجد اومدن مسجد حدود بعد از بسم الله و صلی الله رسول الله گفت اون آدابو گفت و قيراس ما داخل از جمله امور سلام کردن بر اهل مسجد ابن مسعود میگه كنت اسلم على النبي صلى الله وهو في الصلاة فيرد عليه قبل هجراتش بحبشه میگه من سلام میکردم رسول جواب میداد سر نماز یعنی بود میگه فلان ما رجعنا بعد که از حبشه برگش من سلامت عليه فلم يرى يرد عليه جواب میگه نه بعد از اینکه برگشتم و قال ان في الصلاه لا این انسان در نماز مشغول با الله مناجات کردن دیگه جای جواب سلام دادن نیست هر که رسول الله صلی الله علیه و در نمازش جایی با سبابه جواب سلام را میدادن نه با علیکم السلام گفتن و جایی هم با کف دست به پایین و پشت دست رو بالا کردن جواب میدادن چنانچه در حادیث داریم که از ابن عمر روایت هست میگوید ی رسول الله صلی الله علیه و رفت به نماز خونده انصار مدن فسلام عليه و وصلینا انصار مدن سلام ویش كردن رسول جواب داد بعد میگه عبد الله بن عمر میگه گفتم به كيف رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم چگونه جوابشون میداد حين كانوا يسلمون عليه وهو صدر حركت نماز سلام ویش میکردن قال يقول هكذا وبسط كفه داس شو بوस्कर وبسط جعفر بن كف وجعل بطنه أسفل كف داس شو بوين قرار داد ظهره الى فوق اني توري جواب سلامشون داد در حدیث دیگه هم داریم دا از صہیب رضي الله عنه میگه تو بررسیشون و و و یصلی فسلمت فرد علی فردا علی اشاره با صبعه انگشتی می داد پس جواب سلام دادن درسته حالا اون چیزی که ما مد نظرمون هست سلام کردنه اینها اومدن مسجد قباء سلام کردن هر چکه در حال نماز بود ولی با اشاره جوابشو داد و سنت انسان وارد مسجد میشه سلام بکنه سلامی که تشویشی ایجاد نشه حواس کسی پرت نشه حالا میادش. ان شاء الله به این مطلبم اشاره قبلا هم اشاره کرد در آداب روز جمعه تحیه مسجد واجبه. اومدی وارد مسجد شدی، سلام کردی، دو رکعت تحیه مسجد می‌خونی اگر نماز فرضه، به نماز فرضون حق بشی. اگر نماز فرض نبود، قبل انداشتن واجبه که دو رکعت تحیه مسجد بخونی. چون چرا رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمایند: اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي وارد مسجد شد، نماز نشینه تا اینکه دو رکعت نماز بخونه. و در روایت فلی رکع رکعت امره. دو نماز بخونه قبل این اینکه قبل از اینکه بشینه. من قید عید میکه شک در نیست که ظاهر این احادیث زراد بر وجود تحیه مسجد است. از آداب حضور در مسجد اینی که اگر اومدی نماز فرض شده دیگه تحیه نخونی، دیگه سنت قبلی فجرت نخونیم فت قبلی فجرت را بزار یا بعد از طلوع خورشید یا بعد از نماز قضاش بگو. سنت هم میتونه قضاو بکنی تا هجدهم میتونه بکنی نماز سنت هم میتونه قضاو بکنی. میتونی بعد از اینکه نماز صبح تمام شد بعد دورکات بکنی نماز قابلیت. اما اینکه تو نمازی بخونی در کنار اون که نماز برپا اجازه نداری الا اینکه نماز تمام داره میشه نماز قمر برپا تو میدونی نماز تمام میشه قبل از اینکه امام نماز شروع کنه. یعنی میدونی که به نماز ملحق میشی. اونجا اشکالی نیست که نمازش کامل بکنه. اما اینکه امام شروع به نماز بکنه و تو هم مشغول نماز خودت باشی این درست نیست چنانچه در اساس هم میفرما اذا اقیمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه اگر نماز برپا شد درستی است کسی نمازی بکنه جز نماز فرض چون نماز فرض حق باطل کردنش رو نداریم اصلا از مسافرت اومدیم داریم نماز مغرب رو میخونیم یهو نماز برپا شد ما اجازه نداریم نماز فرضمون رو باطل بکنیم به خاطر نماز فرض اشایی که برپا شده. نماز مغرب رو میکنیم بعد به اون جماعت ملحق میشیم چون الله ما وعلا من کرده از بوتلان کردن نمازهای فرض ما خصوصا علل خصوص لا ولا تبطل اعمالكم اعمالتون رو باطل نكنی خصوصا گفتم بحث فرض که جای خودشه داره از آداب نماز وقتی که انسان مسجد میاد با دنبال سطر باشه چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند الا صلى احدكم اگر کسی نماز خون نماز به سطر بخونه پشت سطر سطر یک وجب شروع میشه و بالاتر همونطور که اونون هاشمی میگه هم چون موخره اون تکیگاهش سطر بود رسول الله صلی الله علیه و آله جوی شمشیرشون میگاشتن جوی عصا و نیزه میکاشتن یا پشت ستونی نماز میخواندن حتی وقتی که وارد کعبه شدن کنار دیوار نماز میخواندن و بین سجدگاه رسول الله صلی الله علیه و و دیوار به اندازه یک وجب به اندازه مرور یک بزی بود یعنی فاصله کم بود بین سجدگاه تا سوتری رسول الله صلی الله و رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم می فرماید اگر سطره گذاشتی و نماز خوندی نظر کسی از جلوت رد بشه یا صلی احد کم فلیوصلی نماز بکنی و در جای نهی میکنه. لا يوصلی انا احد کم الا لیه نماز نکنی جز با سطره با وت داد حتیکه در مسسیله یاا صندلی میذاری ستونی یا دیواری یا پشت سری کسی نمازی میکننی بعد فرماین را سخ حد امور را به بینی که ففع او و این اب ف قاتل اگر خاص کسی جلو بد بشه طور گذاشتی ننظر دفعش گل و این اب ف قاتل اگر او مجاهدت کرد اصرار کرد به او به جنگ ننظر که نمازطور قطع بکنه خخصن اینکه در حرم انسان خیلی با تاسش جمع بشه. اگر دید که زنی میخواطرت بشه که زن کنه میتونه باید دستش دفع کنه باید خودش رو به صفتره به چسبان نزیگ بکنه چون سه چیز هستن که نماز رو باطل میکنه یکی زن و یکی سگ و یکی اولا حالا یک شخص میگه بعضی ها با عقل خودشون میان میگه که چرا زن و اونجا با سگ کنار هم گذاشته؟ مگا در نواقضه نماز اون چیزی که نماز رو باطل میکنه میگه نیومده سخن گفتن یا باد از شکم بیرون رفتن آیا سخن گفتن مثل باد از شکم بیرون رفتن چون این نماز رو باطل میکنه سخن گفتن سر نماز بس اشتباهه چون اومده در کنار مثلا باد از شکم بیرون رفتن یا مثلا ادراار کرده این چون نجس اون پاکه ربطی نداره سگ نجسه یا مثلا اونجا سگ اومده یا بعد اومده الاغ بعد اومده زن اینا مبتلاته رسول الله ص در به ترتیب یاد میکنه ربطی نداره به اینکه که ما بخوام بیام تو ذهن خودمون بگیم پس اینجا تشبیه شده زن به اولو خیر تشبیه نشده همونطور که سخن و تشبیه نشده به اون باده از شکم مسئله هر کدوم جای خاص خودشو داره و نباید با هم دیگه تو ذهن خودمون تشبیه بکنیم و قیاس بگیریم با هم دیگه بس ما باید حواسمون جمع باشه سر نمازمون نذاریم کسی از جلو و بشه اگر کسی اصرار کرد او را دفع بکنیم صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم تأکید میکردن بر اینکه پشت سر سطر نماز بگنن خصوصا ستون‌ها میگه که انس میگه که رأیت اکباره اصحاب النبی صلی الله علیه و سلم یبتدرون السواری من النماز کتمام میشون مثلا نماز میخواستن بگنن میرفتن پشت ستون‌ها نماز می‌خونن عند المغرب حتی یخرج النبی صلی الله علیه و سلم تو اکبر نماز خوندن رسوب بیرون مثل نماز مغرب فورا میرفتن مثلا پشت ستون‌ها نماز می‌خونن بزرگان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم اختلاف هست بین ما در بحث سطر و حکمش ولی صحیحینه که واجبه چون رسول سنت نم تأکید کرده و دستور داده که پشت ستون نماز بخونید از آداب مسجد اینه که اگر اومدیم به مسجد بین دو تا ستون نماز نخونید صحابه رسول الله صلی الله علیه و آله میگفتن که زمان رسول الله صلی الله علیه و اگر کسی مینه ستون صف میبس دف میشدن از اون که وسط ستون نماز نخونید حالا چه راه حکمتش الله عالم من میشدن از اینکه وسط ستون صف ببندن نماز جماعت بخونن نماز تکی بخونیم مشکلی نیست ولی جنبسان صف بسن من شدیم از آداب مسجد اینه که اگر ازان گفته شد دیگه کسی از مسجد بیرون نره ابو رضی الله عنه شخصی رو میبینه بعد از ازان میره بیرون از مسجد بعد اشاره میکنه اما هاده فقد صاحب القاسم این خلاف امر رسول صاحب عمل کرده و بعد, بعد حدیثی داریم این باب که رسول صاحب میفرمایند. لا يسمع النداء في مسجد هذا ثم يخرج منه الا لحاجه کسی اوماد بيما صدا زان گفته شو خارج نشه مگر اینکه حاجتی داشته باشه نیازي باشه تو ملای هر جهله الا منافق کسی بره بیرون مگر برای نیاز باشه نیست ولی اگر بره بر نگرده، اون شخص کسی نیست جز منافق بره و بر نگرده به نماز نماز برپا شده باشه ندا اذان گفته باشه اون کسی که اذان رو بشنوه بره بیرون و بعد بر نگرده، این کسی نیست جز منافق آدم باید بترسه یعنی از اینکه این الکاری داشته باشه از مسجدی مسجد دیگه بخواد بره مسجد فرق میکنه نماز مسجدیت حلقه درسی حاضر شده رفته به مسجد دیگه مشکلی نیست ولی اینکه بره بعد نماز رو در اون جماعت نخونه از آن بگه و بره بیرون از مسجد و جماعت ازش فوت بشه این از خصلت های منافقینه که براشون نماز جماعت ارزشی نداره در حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله میفرما یعنی اذا المؤذن فلا يخرج حتى اگر آن گفت مؤذن کسی خارج نشه تو که نماز بخونه این نماز فرض رو با اون جماعت بخونه از آداب حضور در مسجد اینی که انسان که به مسجد اومد مشغول تلاوت قرآن یا ذکر یاد الله بشه و در اون مسجد مشغول دنیا نشه خرید و فروش معامله مسجد برای اعلانیه برای بهداشت و غیر میکروفون به دست بگیرن جار بزنن در محله برای این ساخته نشده چنانچه الصحابه وارد شده، روایت شده، شخصی بلند میشه. در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی وارد شده، شخصی بلند میشه. میگه هم گم شده، بعد رسول صلی الله علیه و سلم توبیخ میگه لا رد الله عليك. یعنی خدا بهت برش نگردونه. یعنی من شوترتو بهت بر نگردونه. یا مثلا شخصی برای تجارت و کاسیب بلند میشه در مسجد. بعد در اون صحابی رسول الله باش برخورد میکنه میگه خدا کی رو از تجارتت ببره. این برخورد، برخورد شده با امور دنیایی در مسجد. داشتن کسی امرار معاشی بکنه و کار کاسبی راه بندازه در مسجد مسجد برای این ساخته نشده مسجد برای عبادت الله ساخته شده برای عبادت برای یاد الله جل و علا از آداب حضور در مسجد نماز فرض که برقرار شد صف ها باید به هم دیگه چسبیده باشه پاها به هم دیگه چسبیده باشه رسول الله صلی الله علیه و آله می فرمایند س بو صفوفکم فان تصویه الصف من تمام الصلاه از کامل شدن نماز اینکه که صفحا به هم دیگه چسبیده بشه شانه به شانه و پا به پا و رسول در حدیث در صحیح مسلم می فرمایند استو و لا تختلفوا فتختلف قلوبکم به هم دیگه بچسبونید و به هم دیگه اختلاف نداشته باشید در صف عقب جلو نباشید. عقب و جلو شدن شما سبب میشه که قلباتون اختلاف بی افت. صحابه رسول الله صلی الله علیه و زمانی که مش دیدن، رسول الله میگفتن استو تراسو صفا رو را راست بکنین خودشون راست و منظم می‌کردن شانه به شانه، موازی همدیگر و پاها رو به هم دیگه میچسبوندن، کعب کعب، کعب پاهاشون رو به هم دیگه میچسبوندن تا اینکه صفا در یک راسته و در موازات همدیگه قرار بگنن اینا شدت و خش صحابه رسول الله صلی الله علیه و بود. انس مالک میگه که از قربت اسلام اینه که تازه مسلمان‌ها اگر پا الان به پاشون بچسبونی تازه مسلمان ها خودش صحابی میگه انگار که علاق آفتاب دیده هست آفتاب به سرش برده پاشو از کنارت میکشه انگار که دیوانه شده پاشو از پات، از کنار پا ت میکشه این خلاف آداب مسجد و آداب جماعت اصف بر اینه که چنانچه صحابی را فهمیدن از سخنان را رسستن رس پاها و پا باید کنار هم دیگه. شاس بشه به شیء آشنای ترسو بیفروند، اقیم الصفوف وحاتو بین المناکم، نم سفر دلوز بر پا بکنید. شانه ها کنار هم دیگر و سود دل خلال، اون خلال و اون فاصله ها رو از بین ببرید. جایی که فاصله هست راستا میگه می بینم، اون جاهایی که فاصله اثر نماز می بینم که شیطان هم چون داره بین این سفاه، داره حرکت میکنه از این سطح به سطح دیگر. نظر جبر شیطان بین ن خدا پر بکنید، خلال و اون فاصله ها را پر بکنید بو ولی نوید ایخواان کن نرب دستایی بهغلدسیتون از برادراتون کنار خودتون بکشید ولا که فروجات فروجاتله جای خالی بر شطان ننظرید و من وصل از صفن الله حالا کسی صفحی را وصل بکنه و هم دیگه به الله روز قیامت او را وصل میکنه به خودش و من قطع صفن صفافن قطعه و الله والله او را قط میکنه کسی صف را قط بکنه. و در حدیث دیگر ازعم عیش روبت است که دستاسص هم میفرمایند من صد پر فی صف رفعه الله به درجه کسی جای خالی در سفر بکنه الله رفعت منزلت بهش میده من صدفر جاتن فی صف رفعه الله به درجه کسی جای خالی رو در صفی پر بکنه الله منزلت و مقام اون بنده رو نزد خودش بالا می بره و بنا له بیتا فی جنن الله منزلی رو در بهش برای و بنده میسازه صفف را پر کردی چسب اوندی صفحی هم دی. رفعت منزلت و خانه درروش ن میید للقه ای تو حد یول سق و, و منکهبه صاحبه میگییم وقتی که ما در صف میستادی میدیدیم شانه بشانه و قدم به قدمه و پاها آ پاها چسبمانیم وا وده هفت تفعللودل کلی هم لطر الان بخور این کار انجام بدی به غلی رو می بینید این کار که خاطری آفتاب دی آفتاب سرش خورده دیوانه شده از آداب حدود درمز شدی که وقتی که اومدی نماز جماعت به هایی پشت صف نماز نکنیم اللا اینکه صف پر شده باشه. اما اینکه به تنهایی نماز بخویم صف جلو جا باشه اون نماز نماز باطلیه چنانچه رسول صلی الله علیه و آله خلف الصف منفرد نماز بر صف نداره کسی به تنهایی بخواد نماز بخونه حالا در بعض ادوات ضعیف اومده که دستش اون یکی کسی بزنید که صف جلو کسی رو بکشید ولی خود روات ضعیفه و مدت سفر بود به تنهایی نماز صحیحه چنانچه حدیث مسلم داریم که پشت سر انس نماز خوند. خودش تنها بود نماز رسول میبنده دو تا یتیم پشت سرش میایسن و مادرشون پشت سرشون تنها بود نماز جماعت درست ما آدم کسی نیست اما اگر کسی باشه یا جا باشه در صف جلو و نماز تنهایی خوندن باطله. از آداب حضور در مسجد این که امام اگر در حال رکوع یا سجده در هر حال دیدی باید بهش باش ملحق بشید اذا جئتم الى الصلاه ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوا شيئا وقتی در نماز میگر رسول الله من رو در حال سجده دیدید سجده بکنید يدار رواته ميجي مفهمين الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما دركتم فصلوا وما فاتكم فاتم وما جديد سكينة واقارب يد بالمسجد، أن نمازك راسيد يطبخونه، أن شيء كفوت أذتهم شوده إدمى بديد. مدار رواته دكان مفهمين الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أتا أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام وما جديد إمام دار هالحول يبود بيش ملحق وشيء هم ترك ميخونه شما شو ما بخونه. أصل أدا بحدود بالمسجد. این که اگر انسان نمازی رو فرض خونده بود اومد به مسجد فرض میخونن با آنها نماز بخونه ولی به نیت نافله چون یزید اون نسبت میگه که برا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم در مسجد خیف نماز فجر رو خوندم میگه که رسول دو دنفر دید که اومدن یک گوشه نماز نخوندن بعد میگه که چرا نماز نخوندین میگه ما نماز, نماز خوندیم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم میگه: علیه و آله بهشون میگه ادصلیتما فی ریحالکما ثم المسجد او مسجد جماعتا فصلی یمعهم اگر, جن، اگر نماز فرض خونده بودید اومدید جایی مسجد دارن نماز جماعت میخونن با اون جماعت نماز بخونید فا این نهالک و من اون نماز برای شما دو نفر نافله محصول میشه اگر مسافری اومدی به مسجد نماز پشت سر مقیم خوندی نماز تو کامل میخونی اومدی تو نماز ظهر رو نخوندی اون شخص امام مسجد نماز ظهر داری میخونه اصل بر اینی که تو با نیت چار باشه سرش چار چنانچه باش عبدالله ابن عباس و همچنین عبدالله ابن عمر. البته که بعضی‌ها جایز نیستن که با استدل به حدیث معاذ در صحیح مسلم که شخص نیت مفارقت بکن دو خون، سلام بده بعد دوباره دو رکعت است با اون جماعت بخونه. بعضی‌ها جایزونه ولی خب اصل با فتوای عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن عباس اینه که انسان نماز را اقتدا بکنه به اون امام و کامل بخونه. و از جمله آداب مسجد جای را برای خودش در مسجد مشخص نکنه که فقط اونجا نماز بخونه این ستون مال خودش یا اینجا جای خودش باشه رسول الله صلی الله علیه و سلم نهی کردن از چند تا چیز چند تا چیز اونایی داریم نه رسول الله صلی الله علیه و سلم عن نقره الغراب نماز نخونید مثل کلاغ منقار بزنین بزنید یک و افتراش السبع مثل سگ و دیگر اون حیوانات درنده دستانتون رو زمین فرش نکنین یعنی این ساق دستتون به زمین نگذارید در حال سجده تو نماز وقتی که میخونید این ساق دست به زمین نچسبونید فاصله بدید کف دست فقط روی زمین بورد باشه و ان یوطن الرجل المكانه في المسجد كما يوطن البحر بجوار خودتون مثل شطور مشخص شطور فقط یه جا میخوابه در تبیره شما دیگه مثل شطور نباشید این چیزایی است که رسول الله صلی الله علیه و در مسجد من کرده همچون خروسی هم همچون منقار نزنیم زمین نماز شتابان نخونیم دستمون رو فرش نکنیم مثل سگ و دیگر حیوانات درنده و جا برای خودمون خاص مشخص نکنیم در مسجد از آداب مسجد این که تشویش ایجاد نکنیم در مسجد سبب نشیم که حواس کسی پرت بشه مثلا در روز جمعه رسول الله صلی الله علیه و شخصی را دید از روی های مردم رد میشه میگه بشین همونجا کسی را آزار نده خب این با قدم برداشتن از روی دوش مردم سر آزار اذیت اون‌هاش چه قدم برداشتند از بین صف‌ها رد شدن چه قرآن با صدای بلند خوندن در مسجد تو ممنوعه ازش هر نوع آزار و از اذیت با صدا باشه چه با فعل باشه تو تشویش ایجاد بکنی تو آزار و از اذیت ایجاد بکنی سر و صدا ها هست مثلا در مسجد یک گوشه بشینن اشخاصی با هم دیگه جر رو بحث راه بندازن حالا مثلا چرا از قرآن خوندن با صدای بلند کرده در مسجد حالا چه برسه داد و ستد و نمیدونم حرف و حدیث دنیوی بخونه باشه رسول الله صلی الله بینه در روز جمعه روی دوش شانه ها داره عبور میکنه مردم میگه اجلس فخد ادید بشین که تو داری آزار و اذیت میدی مردم رو و در حدیثی داریم رسول الله میفرمایند ملغا وتخطر رقاب الناس کسی که دچار بیهودگی بشه در مسجد با حرف زدن و بازی کردن در روز جمعه وتخطر رقاب الناس بیاد از روی دوش شونه مردم رد بشه کانت له ظهرا دیگه اون ثواب رو نداره اون نمازش ظهره یعنی از فضیلت روز جمعه محروم میشه با این فعلش همچنین در حدیث داریم رسول الله صلی الله علیه و سلام الا ان كلكم مناجن ربه حمتون کوسه وقتی که در مسجد حضور پیدا میکنید با پروردگارتون مناجات میکنید فلا يؤذين بعضكم بعضا کسی از شما کسی دیگر را آزار و اذیت نده با صدایش در دعا میکنید دعا واسه بلند نکن جای رسول الله صلی الله علیه و سلام. اشخاصی بلند دعا میکنه اربا و انفسه سکینت خودتون و قوار خودتون رو حفظ رو فانکم فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمًّا وَلَا یعنی اون کسی که داری شما صدا میزنید که کرکی نیست که صدایش صدا صدا داری میزنید یواش آروم الله را مورد خطاب قرار بدین یعنی مناجاتتون آروم باشه بدون اینکه کسی را آزار و اذیت بدید فلا يؤذين بعضكم بعضا کسی کسی دیگر رو آزار نده ولا یرفع بعضكم على بعض في القراءه قران می خونید صدای خودتون رو بر هم بالا نبرید حتی قرآن خوندن نه کنید قران دیگه چه برسه به چیزهای دیگر و در روایت آمده ولا یرفع بعضكم على بعض في القراءه في الصلاه در نماز پشت سر امام داریم میکنید نماز سریه طوری نخونید که بغل دستیتون ندونه که چی داره میکنه نماز را با آرامش بکنید، آرام بخونید با صدای زیر که به غددسیتون براش تشویش ایجاد نشه، سبب نشه که ندونه چی داره میخونه. اینها از آداب مسجد از جمله آداب این که حرمت نماز رو نگه داریم. از جلو کسی نماز رد نشیم مگر اینکه صف نماز باشه، جلو امام که مطلقا حرام رد شده الا پشت ستراش. اجازه نداریم از جلو امام رد ولی جلو مأمومین میتونیم رد بشیم. اگر شخصی هم فردی فرادا تکی نماز می‌خونه جلوبه اونم نمی‌تونه رد بشه چه امام باشه چه فردی باشه رد شدن از جلویش حرامه رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمایان لو یعلم المار و بین یدی المصلی ماذا علیه اگر بدون چه گناهی به در مقابل عبور از جلوی نماز گذار ان یقف 40 خیرا له من مر یمر بین یدیها چه هل ساب میگه نه چهل روز 40 سال 40 ساب میگه بهتر بود از اینکه از جلو اون نماز رد می شود. نباید رد بشی باید صبر بکنی، تحمل بکنی تا نماز سووم بشه و بعد رد بشی یا از پشت سطرش رد بشی حال خصون وقتی که شخص شخصتر نگذاشته از جلو اون سش دگاهش انسان رد بشه نه از جلو خود و نماز گذار یعنی بین خودش رو در نظر بگیره بینش و بین اون س از جلو اون رد بشه حالا این احادیث و بحکان گفته شد حالا مسئائلله دیگه هم هست مثلا ما قرت خورآ مند شدیم. حسین در نماز، حسین نماز سری تا تشویشی ایجاد نشه برای بغل حالا بعضی ها با نیت نمیت و صلی این بس واسف این نیت رو تکرار میکنن. این از باب اولا درست نیست این از باب اولا حرامه اینها ما باید متوجهش بشیم. اینها خلاصه ای بود از آداب احکام حضور در مسجد و همچنین حضور در نماز جمعه به همین قد اکتفا میکنیم. سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله وبحمده صلی الله علی محمد و محمد.